فصل هشتون از تصور اینکه که تصوب می تواند ماری را مقیل باز پوشیدن یا باز کردن در خمیردندان تماشا کند دیوانه می شدم پایم درد می کرد و در این فکر بودم که هنوز این شانس را دارم که در تاعترهای پایین شهر با دستمزد مزد سی تا پنجا مارک دلغک بازی کنم یا نه از طرفی تصور بی توجهی وقتی ماری در حال بستن در خمیردندان است رنجاور بود تجربه به من ثابت کرده که کاتولیکها به جزئیات بیتوجهند شماره تلفن تسوپفنر را داشتم ولی هنوز نمیخواستم به او زنگ بزنم آدم نمیتواند حدس بزند از انسانی تحت فشار ایدولوژیک چه کارهایی ساخته است شاید تسوپفنر با ماری عروسی کرده بود و صدای ماری را پشت تلفن میشنیدم که میگفت تسوپفنر بفرمایید این را نمیتوانستم تحمل کنم برای تلفن کردن به لئو احتیاج به شمارهش داشتم و در دفتر تلفن میان شماره های مدارس مذهبی نتوانسته بودم شماره او را پیدا کنم. ولی می دانستم که دو مدرسه علوم دینی وجود دارد، لئونیز و آلبرتونیوم. عاقبت قدرت تلفن کردن به اطلاعات را پیدا کردم. اشغال نبود و توانستم صدای دخترک تلفنچی را بشنوم. دخترک با لحجه اهالی راین صحبت می کرد. گاهی چنان آرزوی شنیدن این لهجه را می کنم که هر کجا باشم شماره یک مرکز تلفن را در بون می گیرم تا این لحجه دلنشین را بشنوم لحجه که در آن حرف ر به کار نمی رود درست همان حرفی که انضباط ارتش به آن وابسته است جمله لطفا صبر کنید را فقط پنج بار شنیدم بعد دخترک جواب داد و من گفتم شماره ی جایی را می خواهم که کشش تربیت می کنند ضمنا گفتم که توی دفتر تلفن آن را پیدا نکردم دخترک خندید و گفت اسم این جاها مدارس شاپانه روزی کشیشان است کلمه جاها را بسیار خوش آهنگ ادا کرد و شماره هر دوی آنها را به من داد صدای دخترک برایم آرامش بخش بود او بدون اشفغری و با صدای طبیعی بیریا و آری از خودنمایی و با آهنگ دلانگیز مردم راین را صحبت می کرد حتی دلم می خواست شماره تلگرافخانه را هم بگیرم و به کارل اموندز تلگرافی مخابره کنم من هیچ وقت نفهمیدم چرا هررک می خواهد خودش را باهوش نشان دهد سعی می کند تنفر خود را از بن نشان دهد بن همیشه جاذبه به خصوصی داشته جاذب خوابالود همانطور که زنانی وجود دارند که جاذبهشان در خوالودگی آنهاست طبیعی است که بن نمیتواند مبالغه را تحمل کند و در مورد این شهر مبالغه شده است. شهری که قادر به تحمل مبالغه نیست را نمی شود توصیف کرد و این خود صفت کمیوی است ام چنین هر بچه می میداند که حال و هوای بون حال و هوای باز نشسته هاست در اینجا رابطه تنگاتنگ تنگ میان فشار هوا و فشار خون وجود دارد چیزی که به بون نمی خورد این هیجانات ظاهری است من در خانه به اندازه کافی فرصت همصحبتی با وزیران نمایندگان مجلس و افسران ارشد ارتش را داشتم مادرم از مجلس که کن کنها به حساب می آید آنها وقتی دور هم جمع می شوند حالت دفاعی سردرگم و رقت دارند همه یانها آنها وقتی صحبت از بون می شود پوس خندی می زنند که به ظاهر صورت همدردی دارد ولی در باطن حکایت از بی اعتقادی آنها می کند. من از این اداها سردر نمی آورم اگر زنی که خوابالودگی جازبه اوست شروع به رقص کانکان کان کند می تواند این طور در نظر آورد که مواد نیروزا مصرف کرده ولی آنها نمی توانند یک شهر را به رقص بیاورند این کار از آنها ساخته نیست یک امه پیر می تواند راه و رسم بافتن پولیور یا طرز تعارف کردن مشروب را یاد بدهد ولی نمی تواند از او توقع داشت چون یک دانشمند دو ساعت درباره همجنسگرایی سخنرانی کند یا بی مقدمه به بحث درباره فاحشه خانه ها که همه به شکلی دردناک از فقدان آن رنج میبرند حرف بزند انتظارات نابجا، شرم و غلط و شایعات بی اساس همه مسائلی غیر طبیعی هستند حتی اگر نمایندگان پاپ هم درباره کمبود فواحش در این شهر اظهار نارضایتی کنند برای من تعجب آور نخواهد بود یک بار در یکی از های مادرم با یکی از اعضای حزب آشنا شدم که عضو شورای مبارزه با فحشا بود و در گوشم از کمبود فواحش اظهار نگرانی میکرد. بن پیش از این افراد وحشیانه با کوچه های تنگ کتاب فروشی ها اتحادیه های دانشجویی و قنادی های کوچکی که در پستوی آن میشد قهوه خورد شهری قابل تحمل بود قبل از اینکه به او تلفن کنم لنگان لنگان روی بالکن رفتم تا نظری به شهر زادگاه هم میاندازم. شهر با کلیسای بزرگ، شیروانی های قصر قدیمی برگزینندگان بنای یادبود بوده به بازار کوچک و باغهایش واقعا زیباست. سرنوشت بون این است که کسی سرنوشتش را باور نمی کند. آن بالا توی بالکن هوای بن را عمیقا فرو دادم. این کار به طرز بی سابقه یارامش بخش بود. بون برای یک تغییر را با هوای کوتاه اعجاز می کند از بالکن به اتاق آمدم و بیدرنگ شماره جایی را که لعو درس می گرفتم ترسی وجودم را گرفته بود از وقتی کاتولیک شده او را ندیده بودم لئو خبر کاتولیک شدنش را به طرز بچکانه و دقیقی که مخصوص خودش است داده بود برادر عزیزم به دین وسیله به اطلاعات میرسانم که پس از تفکر و مطالعه کافی تصمیم گرفتم وارد کلیسای کاتولیک شده خودم را برای کشیش شدن آماده کنم شک نیست که به زودی یک یکدیگر را خواهیم دید و امکان مذاکره حضوری درباره این تغییر و تحولی که در زندگی من اهمیت به سزایی دارد خواهیم داشت برادری که تو را دوست دارد لئو طرز نامه نوشتن لئو هیچ ربطی با ظرافت او در پیانو زدن نداشت این شیوه ی سعی دارد همه چیز را به شیوه خشک اداری حل و فصل کند، مالی خولی های را می کند. اگر همینطور پیش برود، روزی اسخف اصیل و مفیدی خواهد شد. در شیوه ی پدر و لعو شکل همند. آنها درباره همه چیز طوری می نویسند که گویی صحبت از معامله زغال سنگ است. مدتی طول کشید تا یک نفر پای تلفن آمد، من داشتم این شلخت گه کلیسا را با کلمات تند توصیف می کردم و می گفتم گوه که گوشی را برداشتند صدای گرفتهی که گویی غافلگیر هم شده بود گفت بله انتظار شنیدن صدای لطیف راهبه ای را که بوی قهوه رقیق و شیرمی خوش می دهد داشتم به جای آن صدای گرفته یک مرد و بوی کلم شنیدم این بو به قدری تند بود که به سرفه انداخت آقابت گفتم ببخشید می توانم با دانشوی الهیات لو شنیر صحبت کنم گفت شما که هستید؟ گفتم شنیر مدتی سکوت کرد گویا نامم را نفهمیده بود پس از چند سرفه گلویم را صاف کردم و گفتم برای می میکنم شه مثل شاگردان؟ نه مثل نان یه مثل یاس و ره مثل رسول گفت منظورتان چیست از صدایش همان قدر بدبینی و تردید میشنیدم که خودم هم دچارش بودم شاید استاد پیر و خوشمشربی که پیپ میکشید پای تلفن گذاشته بودند با عجله چند کلمه لاتین دست و پا شکسته هم کردم من برادر لئو هستم احساس کردم کارم به دور از مردانگی است به آدم‌های زیادی فکر کردم که در عمرشان بشان یک کلمه هم لاتین یاد نگرفته بودند و گاه گاهی می‌خواستند با کسی در آنجا صحبت کنند عجیب این که پیرمرد خنده‌ای کرد و به لاتین گفت برادر شما سر میز قضا است و بعد با صدای بلندتری گفت آقایان مشغول صرف غذا هستند و هنگام صرف غذا کسی اجازه ندارد مزاحمشان شود گفتم کار فوری دارم گفت کسی مرده گفتم نه ولی چیزی در همین حدود است گفت تصادف شدید ماشین گفتم نه یک جراحت درونی است با صدایی آرامتر گفت یک خونریزی داخلی گفتم نه روحی یک مسئله روحی است گویا این کلمه برایش نامفهوم بود سکوت سردی کرد گفتم خدای من آخر انسان از جسم و روح تشکیل شده است قرولوندی که کرد نشان میداد در قبول این ادعا تردید دارد میان دو که به پی پش زد زیر لب گفت آگوستینوس بوناونتورا و کزانوس همه گمراهند با سماجد گفتم روح خواهش میکنم به آقای شنیر پیغام دهید روح برادرش در خطر است. به مجردی که غذایش تمام شد به او تلفن کند با سربی خاصی گفت روح برادر خطر همانطور که ممکن بود بگوید آشغال کساف سطل شیر دوشی این جریان برایم مزک بود هرچه باشه در آنجا جوانها را برای شبانی روح تربیت میکردند و او میبایست کلمهٔ روح را یک بار در عمرش شنیده باشد گفتم موضوع خیلی حیاتی است خیلی او فقط هم, هم کرد برایش کاملا غیرقابل فهم بود که چیزی که با روح سر و کار دارد چطور میتواند حیاتی باشد گفت پیغام شما را به او میرسانم ولی مقصودتان از شاگردان چه بود؟ گفتم هجی میخواستم اسمم را برای تا کنم گفت شما جدا خیال میکنید که توی مدرسه ویجی کردن کلمات را یاد میدهند. چنان زنده و پرهایه شده بود که تصور کردن بالاخره موضوع باب دندانش را پیدا کرده است فریاد زد این روزها خیلی آسان میگیرند خیلی آسان گفتم معلوم است. باید بیش از این توی مدرسه کتک بزنند فریاد زد من هم همین را میگویم گفتم بله به خصوص معلمها باید بیشتر کتک بخورن یادتان نمی رود که پیغام را به برادرم برسانید گفت همان موقع یادداشت کردم یک موضوع روحی مهم مربوط به شاگردان گوش کنید دوست جوان من اجازه دارم به عنوان آدمی که بدون تردید از شما پیرتر است نصیحتی دوستانه به شما بکنم گفتم بفرمایید گفت آگوستینوس را رها کنید. بیان تارداستان فردیت در غالب کلمات ربطی به الهیات ندارد و ارواح جوان را فاسد می کند. اینها فقط چرندیات روزنامه نگارهاست که یکی دو اون منطقی چاشنیش کردهاند از این نصیحت من ناراحت که نشدید. گفتم خیر الان می میروم و کتاب آگوستینوسم را می سوزانم. با لحنی پیروز مندانه گفت آن کار خوبی میکنید باید آن را توی آتش انداخت خدا به همراهتان میخواستم از او تشکر کنم ولی لزومی ندیدم گوشی را گذاشتم و عرق پیشانیم را پاک کردم بو روی من تأثیر عجیبی دارد بوی تند کلم اعصاب نباتیم را تحریک کرده بود درباره روشهایی یه روش هایی که مقامات کلیسا به کار میبرند فکر میکردم قابل تحسین است که به مردی به این پیری امکان میدهند که خودش را از کار افتاده و بیهوده نداند ولی برایم غیر قابل فهم است که چرا این پیرمرد کر را پای تلفن گذاشته بودند با بوی کلم از مدرسه شبان روزی آشنایی داشتم یک بار کشیشی برایم توضیح داد که کلم برای سرکوب کردن شهوت مفید است درباره روشهایی که مقامات کلیسا به کار می برند فکر می کردم. قابل تحسین است که به مردی به این پیری امکان می که خودش را از کار افتاده و بیهوده نداند ولی برایم غیر قابل فهم است که چرا این پیرمرد مرد کر را پای تلفن گذاشته بودند با بوی کلم از مدرسه شبان روزی آشنایی داشتم یک بار که برایم توضیح داد که کلم برای سرکوب کردن شهوت مفید است تصور اینکه که شهوت من یا کس دیگری را سرکوب کنند برایم تهو آور بود از قرار معلوم گویا در مدرسه شب و روز در باره یه طلب جسمانی فکر می کنند و مطمئنا در آشپزخانه راهب نشسته است و هنگام تنظیم فهرست غذا با مدیر مدرسه درباره آن صحبت می کند. آنها رو به هم مینشینند و بدون این که حرفی بزنند درباره تک تک غذاهایی که توی فهرست نوشته شده فکر می کنند. این شهوت را تحریک و این یکی سرکوب می کند آه برای من چنین صحنهی درست همان چیزی است که به آن بیشر می میگویند. درست مثل فوتبال لعنتی که در مدرسه شبان روزی مجبور بودیم ساعتها بازی کنیم. همه ما می دانستیم که میخوان ما را خسته کنند تا به فکر دخترها نیافتیم. این موضوع بازی فوتبال را برایم تنفر آور میکرد. حالا وقتی فکر میکنم که به برادرم لعو کلم میخورانند تا شهوتش را سرکوب کنند. چنان از خود بی خود می که می به آنجا بروم و روی تمام کلم ها جوهر نمک بپشم. نوشته جوانات توی این مدرسه بدون کلم هم به قدر کافی سخت است تحمل روزانه ی چیزهای غیر قابل فهمی مثل رستاخیز جسمانی و زندگی ابدی باید به طرز وحشتناکی مشکل باشد مانند بیل زدن تاکستان صاحبخانه و دیدن اینکه چیزی از آن دستگیرت نمی شود سر سخت جنین ماری هاینریش بلن خیلی به ما لطف کرد و تمام این حرفها را برایم تشریح کرد او خودش رو در کار و مزد کارگری نابلد در تاکستان صاحبخانه میدانست. وقتی ساعت پنج از مریضخانه بیرون آمدیم او را پیاده تا خانهش همراهی کردم چون پولی برای سوار شدن به تراموا نداشتیم. وقتی مقابل خانهش رسیدیم و او دست کلیدش را بیرون آورد، با کارگری که از کار شبانه خسته و با ریشی نتراشیده باز گردد فرقی نداشت. من می دانستم که با این حال نظر شرکت در مراسم عصرانه مذهبی چقدر برایش مشکل است. آن هم با جزئیاتی که از این مراسم از زبان ماری شنیده بودم. وقتی هاینریش ریش در را باز کرد زنی که خدمتکار خانه بود در راه رو ایستاده بود. پیر زنی بود غغ و که دمپایی به پاداشت و پوست پاهای لختش به زردی میزد. او مادر یا خواهر این ریش یا حتی یک راهبه نبود پیر زن به او پرخاش کرد این چه چهوضع ایست؟ این چه و است؟ از اینکه پدر و مادران کاتولیک میترزن دختران جوانشان را به خانه کشیش بفرستند، تعجب نمیکنن و تعجب هم نمیکنم که این کشیش های بعضی از اوقات دست به کارهای احمقانه بزنند اما چنین برخورد زشتی با مردان مجرد هم مرا ناراحت می کند نزدیک بود دوباره به پیرمرد کره مدرسه الو تلفن کنم دلم میخواست با او درباره طلب جسمانی درد دل کنم از تلفن کردم به کسانی که مرا می شناختم می ترسیدم. این پیرمرد غریبه شاید مرا بهتر میفهمید دلم میخواست از او بپرسم آیا نظرم درباره مذهب کاتولیک درست است یا نه؟ برای من توی دنیا فقط چهار نفر کاتولیک وجود داشت. پاپ یووهنا،علک گینس، ماری و گرگوری گرگوری، بکسرسسیاه پوست پیر شده ای بود که چیزی نمانده بود در گذشته قهرمان بکس جهان شود و حالا در وایت ها عنوان پهلوان زندگیش را میگذراند. گایی که سر و کارم به بهوایته ای می میافتاد که او هم اتفاققا آنجا کار میکرد با او صحبت میکردم. او بسیار پریزگار بود و خود را متعلق به کلیسا می دانست و مدال سومی جهانش همیشه بر سینه فراخش آویزان. بیشتر مردم او را دیوانه میدانستند چون تقریبا حرف نمیزد و جز نان و خیار چیزی نمیخورد. با وجود این چنان قوی بود که می توانست من و ماری را مانند عروسک یک جا روی دست بلند کند و دور اتاق بگرداند. کارل امونز و هاینریش بلن و همچنین ت صبحفن را هم به احتمال زیاد میشد کاتولیک خواند در مورد کاتولیک بودن ماری تردید داشتم. وحشت متافیزیکیش را نمیفهمیدم. حالا هم که پیش تسبفن رفته و آن کاری را که با من کرد با تصوب فنر می میکند و دست اعمالی میزده که در کتابهایش با سراحت پشت پا زدن به وظایف زن و زنا خوانده میشود. تنها دلیل وحشت متافیزیکی ماری این بود که من حاضر نبودم به طور رسمی و محذری با او عروسی و بچه های من را به شیوه کاتولیکی تربیت کنم. ما هنوز بچه نداشتیم ولی با هم صحبت می کردیم که چگونه آنها را تربیت خواهیم کرد؟ چگونه با آنها صحبت خواهیم کرد و چگونه به آنها لباس خواهیم پوشان و جز در مورد تربیت آنها با هم اختلافی نداشتیم من با قصد تعمید بچه و مخالفتی نداشتم ماری می گفت این را باید کتما تعهد کنم وگرنه گرنه عقدمان مشروعیت نخواهد داشت وقتی با شرط ماری موافقت کردم معلوم شد باید به طور رسمی هم ازدواج کنیم. آن وقت دیگر قاسی صبرم لبریز شده گفتم بهتر از یک سال دیگر صبر کنیم او به گریه افتاد و گفت تو نمیفهمی که برای من زندگی کردن در این شرایط بدون امید به اینکه بچههامان بتوانند از تربیت مسیحی برخوردار شوند چه اندازه مشکل است درکه این موضوع که ما پنج سال تمام حرف هم را در این مورد نفهمیده بودیم وحشتناک بود من موقع نمی دانستم که آدم باید قبل از عقد مذهبی ازدواجش را در دفاتر دولتی هم ثبت کند. مسلم است که به عنوان یک طببععه بالغ دولت باید آن را میدانستم ولی خیلی ساده از آن بیخبر بودم همانطور که تا چندی پیش نمیدانستم که شراب سفید را سرد و شراب قرمز را کمی گرمتر میمشند. می دانستم دفاتر دولتی ازدواج وجود دارد و در این دفاتر تشریفات ازدواج به عمل می آید و قبال ازدواج صادر می شود ولی تصور می کردم این دفاتر برای کسانی است که به کلیسا تعلق ندارند و یا کسانی که با مراجعه به آن می به دولت خوش خدمتی کنند وقتی فهمیدم اول باید ازدواج را در این دفاتر ثبت کرد و سپس با ثبت دولتی به کلیسا رفت، حسابی عصبانی شدم و وقتی ماری گفت باید کتما تعهد کنم که بچه هایمان را تربیت کاتولیکی کنیم، از کور در رفتم و با هم دعوا کردیم. این کار به نظرم یک نوع سرکیسه کردن و گروکشی میآمد. دوست نداشتم به ماری تعهد کتفی بدهم او می توانست بچه ها را قسط تعمید بدهد و هر طور که دلش میخواد تربیت کند. آن شب حال ماری خوب نبود خسته و رنگ پریده به نظر می و با صدای بلند با من بحث می کرد وقتی گفتم حرفی ندارم و هر کاری او بگوید میکنم، کنم و هرچه بخواهد امضا می کنم شد و گفت این کار رو از تنبلی می کنی نه از روی ایمان به اصول اخلاقی من گفتم بله از تنبلی و اینکه میخواهم تو را تمام عمر در کنارم داشته باشم برای نگه داشتن تو حتی آزرم کاتولیک حتی احساساتی شدم و گفتم کلمه ایمانند اصول اخلاقی مرا به یاد شکنجگاه های قرون وستا میاندازد ماری این را که حاضر بودم به خاطر او کاتولیک شوم اهانت تلقی کرد خیال میکردم توانستم دلش را به دست اما اشکش را درآوردم ماری گفت حالا دیگر کار از من و او گذشته و برایش تنها اصول اخلاقی اهمیت دارد شب بود و توی یک هتل در آنوفر بودیم از آن هتل‌های پرزرق و برق که اگر یک فنجان قهوه می‌خواستی یک فنجان نیمه پر برایت می می‌آوردند این هتل به قدری سطح بالاست که پر کردن فنجان را کاری پست می‌دانند و پیشخدمتها بهتر از مردم متشخصی که به آنجا رفت آمد میکنند از آداب و رسوم سر بر می‌آورند وقتی در چنین هتلی زندگی می‌کنم مثل این است که در یک مدرسه شبان روزی گران و کسل کننده هستم از آن گذشته آن شب خیلی خسته بودم تمام روز در سه جای مختلف برنامه اجرا کرده بودم قبل از ظهر برای یک عده از سهامداران فولاد غروب برای عدهای که نامزد کارمندی دولت بودند و شب در یک سالن تاتر توی سالن تعاتر کف زدن تماشاچیان چنان کم بود که سقوطم را در آینده ای نزدیک به چشم دیدم وقتی توی این هتل مسخره میخواستم آبجو سفارش بدهم پیشخدمت چنان با سردی پشت تلفن بله قربان میگفت که گویی کود حیوانی مایع سفارش دادم آن وقت آبجو رو هم توی لیوان نقره آوردند آه خسته بودم فقط میخواستم یک لیوان آبجو بخورم کمی منچ بازی کنم حمام بگیرم و روزنامه های عصر را بخوانم و در کنار ماری بخوام دست راستم را روی پتوی ماری و صورتم را چنان نزدیک به سر او بگذارم که بوی موهایش را با خود به خواب ببرم. هنوز کف زدن های بیروه تماشاگران نمایش توی گوشم تنین داشت. ترجیح میدادم به رسم امپراتوران روم باستان انگشت شستشان را به سمت پایین میگرفتند. خیلی انسانی تر بود. کف زدن تحقیر را ها به مسخرگی آبجا توی لیوان نقره بود. حالا برای بحث ایدولوژیک مناسب نبود. ماری با صدایی آهسته تر گفت هانس مسئله به کاری که ما کردیم مربوط می شود. ماری فراموش کرده بود که کلمه کار را به چیز دیگری می گفتیم. امینطور که پای تخت خواب بالا و پایی می رفت، چنان دود سیگارش را با مهارت و دقیق بیرون میداد که دود چون نقطه معلق به نظر می آمد. کم کم سیگار کشیدن را یاد گرفته بود. در آن پلیور سبز رنگ با پوست سفید و موهایی که از قبل سیاه تر شده بودند، زیبا به نظر میآمد. و من برای اولین بار های روی گلویش را دیدم. گفتم کمی تر باش. بگذار بخوابم. فردا سر صبحانه صحبت کنیم به خصوص درباره کار ولی او توجهی نکرد. رویش را برگرداند و مقابل تخت خواب ایستاد و من برای اولین بار علت رفتار ماری را کشف کردم وقتی به سیگار پاک میزد، چند چروک که کوچک کنار لبانش پدیدار می شد این چروک ها را تا به حال ندیده بودم در حالی که سرش را تکان می داد به من خیره شد غرغری کرد رویش را برگرداند و به قدم زدن مشغول شد با آن حال خسته گفتم سردار نمی آورم اول به خاطر امزای تعهد و ازدواج رسمی دعوا میکنیم و حالا که من حاضر به انجام هر دو هستم تو از قبل هم ناراحتتری گفت بله برای اینکه خیلی زود موافقت کردی تو فقط از اختلاف و درگیری میترسی وگرنه با آن موافقت نمی نمیکردی تو اصلا چه میخوایی؟ گفتم تو را میخواهم و نمیدانم آیا به یک زن بالاتر از این هم میشود چیزی گفت گفتم بیا پهلوی من دراز بکش جا سیگاری را هم خودت بیار اینطور طور با هم راجع به همه چیز صحبت کنیم دیگر نمی کلمه کار را در حضور ماری به زبان میآورم. سرش را تکان داد جا سیگاری را روی تخت خواب کنار من گذاشت کنار پنجره رفت و مشغول تماشای بیرون شد ترس وجودم را گرفته بود گفتم چیزی توی این حرف که ازیتم می کند بوی تو را نمی دهد. با صدای آرام پرسید. پس بوی کیرا را می دهد؟ پس بوی چه کسی را میدهد و من دوباره گول این صدای لطیف را خوردم گفتم بوی بن بوی گروهت بوی وید و تسوپفنر را میدهد بدون اینکه رویش را برگرداند گفت شاید کاش چیزهایی که با چشمانت میبینی با گوشهایت هم میشنیدی با خستگی گفتم معنی حرفت را نمیفهمم منظورت چیست گفت مثل اینکه نمیدانی امروز کاتولیک های هانوفر جلسه دارند گفتم آگه رو را دیدم گفت ولی اینکه هریبرت و زومویل اینجا بیایند به مغزت خطور نکرد من نمیدانستم اسم کوچه که تسوپنر هریبرت است ولی وقتی این اسم را به زبان آورد به نظرم آمد که باید اسم او باشد به یاد دست در دست انداختنشون افتادم خیابان های هانوفر پر از کشیش کاتولیک و راهبه بود به این فکر کردم که تعداد آنها بیشتر از گنجایش این شهر است. ولی به فکرم نرسید که ماری ممکن است با کسی ملاقات کرده باشد تازه ما وقتی چند روز بیکار بودم به بن می رفتیم و ماری همیشه فرصت داشت تا به اندازه کافی از گروه فیز ببرد پرسیدم همینجا توی هتل گفت بله گفتم چرا نگفتی من هم بیایم؟ گفت تو اینجا نبودی؟ تمام هفته این طرف و آن طرف بودی؟ هیلتس سله گفتم ولی حالا اینجا هستم تلفن کن بگو بیاین پایین توی بار چیزی با هم بخوریم گفت دیگر اینجا نیستند امروز بعد از او رفتند گفتم آه خوشحالم که توانستی هر چند وارداتی و اندازه کافی هوای کاتولیکی استنشاق کنی این اصطلاح متعلق به من نبود بلکه خود ماری گاهی میگفت باید دوباره هوای کاتولیکی استنشاق کنند پرسید چرا ناراحتی؟ هنوز کنار پنجره رو به خیابان ایستاده بود. دوباره سیگار میکشید. این سیگار کشیدن پشت سر همه او مانند طرز صحبت کردنش با من غریب بود. در آن لحظه مانند زن زیبا و نه چندان باهوشی بود که برای رفتن دنبال بهانه میگردد. گفتم ناراحت نیستم خودت این را میدانی. بگو که میدانی. حرفی نزد ولی سرش را پایین آورد و من در صورتش دیدم که به زور جلای را گرفته است چرا؟ بهتر بود گریه کند شدید و طولانی آن وقت من می توانستم بلند شوم و او را در بازوانم بگیرم و ببوسم او را نبوسیدم تمایلی به بوسیدنش نداشتم و نمیخواستم از روی وظیفه یا عادت این کار را بکنم سر جایم ماندم به صبح و زمرد فکر کردم که ماری بدون اینکه یک کلمه به من بگوید سه روز تمام با آنها صحبت کرده بود. آنها حتما درباره من صحبت کرده بودند. تسبنر از رؤسای هاست مدت درازی صبر کردم، نمیدونم یک دقیقه، نیم دقیقه یا دو دقیقه. وقتی عاقبت بلند شدم و به طرف ماری رفتم، سرش را تکان داد. دست های از شانش پایین انداخت و دوباره شروع به حرف زدن کرد درباره وحشت متافیزیکیش و رعایت اصول اخلاقی. به نظرم آمد که بیست سال است با او عروسی کردم. صدایش حالتی پندآموز داشت. خسته تر از آن بودم که به دلایلش گوش حرف از کنارم رد می شدن. حرفش را قطع کردم و از شکستی که پس از سه سال برای اولین بار در سالان تئاتر نصیبم شده بود برایش گفتم. ما کنار پنجره ایستاده بودیم و به تاکسی ها که بی اعضای کمیته کاتولیکی را به ایستگاه راه آهن می بردند نگاه می کردیم. راهبه ها، کشیش ها و آدم های معمولی که خیلی جدی به نظر می آمدند. در آن شلوغی شنیتلر را شناختم. او در تاکسی را برای راهبه پیر خوشلباسی باز نگه داشته بود. آن وقتها که در خانه ما زندگی میکرد پروتستان بود بنابراین یا کاتولیک شده بود یا عنوان ناظر پروتستان در این جلسه شرکت کرده بود. از او همه کاری برمیآمد. آن پایین خدمتکاران هتل چمدان ها را میآوردند و صاحبان آنها انعام کف دست خدمتکاران می میگذاشتند. از فرت خستگی و ناراحتی همه چیز جلوی چشم می چرخید. تاکسی ها و راهبه ها، چراغ ها و چمدان ها و تمام وقت صدای کف های خسته و بیجان تماشاگران در گوشم زنگ می زد مدت ها بود که ماری به سخرانیش درباره یه حفظ اصول خاتمه داده بود دیگر سیگار هم نمی کشید. وقتی از کنار پنجره برگشتم دنبالم آمد شانه مرا گرفت و چشمانم را بوسید و گفت تو خیلی مهربانی، مهربان و خسته ولی وقتی خواستم او را در آغوش بگیرم آهسته گفت ها خواهش میکنم نه خواهش میکنم و من اشتباه کردم که رهایش کردم خودم را با لباس روی تخت انداختم و بلافاصله به خواب رفتم صبح وقتی بیدار شدم از رفتن ماری تعجب نکردم یک تکه کاغذ روی میز پیدا کردم نوشته بود من باید به راهی بروم که میبایست بروم ماری تقریبا 25 ساله بود و باید حرف بهتری برای نوشتم به خاطرش میرسید به این خاطر از و دلگیر نشدم اما این توضیح مختصر برایم کافی نبود فورا نشستم و نامی مفصل برایش نوشتم بعد از صبحانه نامی دیگر و همینطور هر روز برای ماری نامه نوشتم و هم به آدرس فرد بویل در بون فرستادم. ولی تا به حال ماری جواب آنها را نداده است.